چیزی به روشنایی نمانده بود که یکی از تکمه های پشت سرش به چیزی گیر کرد. پیرمرد صدای شکستن چوب قلاب را شنید و نخ از غایق بیرون جست. در دل تاریکی کارد شکاریش را پیدا کرد و همه فشار وزن ماهی را روی شانه چپش نهاد و به عقب خم شد و تنابی را که از حره قایق گذشته بود برید. بعد تناوب پهلوئی را برید و در دل تاریکی دو انتهای آزاد تناوب را گره زد. همه این عملیات را ماهرانه با یک دست انجام میداد و پایش را روی گلوله های تناوب گذاشته بود تا موقع گره زدن تکان نخورند. حالا شش گلوله تناوب ذخیره داشت. چهار گلوله از دو تئمه‌ای که نخشان را بریده بود به دست آمده بود. و دوتای دیگر از ای که ماهی خورده بود باقی مانده بود و همه این شش گلوله به هم وصل بودند فکر کرد وقتی هوا روشن شد تناب ای رو که توی عمق هفتاد متری پاره میکنم و به تنبای ذخیره گره میزنم تا ولا... سی سد تناب شسم مرغوب با همه گلابه و وزنه از دست دادم جای همه میتونم دوباره پر کنم و مگه یه ماهی به گلابم گیر کنه و تناب ماهی بزرگم رو پاره کنه که میتونه جای این ماهی رو پر کنه نمیدونم اون ماهی که الان رو برد چه جور ماهی بود شاید نیزه ماهی یا شمشیر ماهی یا کوسه بود اصلا ملتفد نشدم، ولی باید به سرعت از شرش خلاص می شدن. بلند گفت. کاش به سرک بود. فکر کرد. اما اون پیشت نیست پیره برد. فقط خودت هستی و خودت و بهتره که تاریک باشه یا نباشه برگردی سر و آخری و پارش کنی و اون دو گوله تناب ذخیره دیگر رو بهش ببندی. و همین کار را کرد که در تاریکی بسیار مشکل بود. و یک بار که ماهی محکم تناغ را کشید، پیرمرد با صورت به زمین افتاد و زیر چشمش پاره شد. باریکه خون از گونهش سرازیر شد. اما پیش از رسیدن به چانهش دلمه شد و دوباره به جلوی قایق به سر کارش برگشت و به چوب تکی داد. گونی را روی پشتش جا انداخت و به دقت تناب را روی پشتش جابجا کرد و آن را روی قسمت سالمی از گردش انداخت و همچنان که شانش را لنگرگاه تناب کرده بود به دقت کشش ماهی را حس کرد و بعد با دستش پیشروی قایق را بر آب حس کرد. فکر کرد نفهمیدم چرا یه مرتبه اونطور تکن خورد؟ آخ حتما سیم قلاب روی کوه پشتش لغزیده از من پشتش هر طور باشه به بعدی پشت من نیسته ولی هر قد بزرگ باشه نمیتونه اقایق رو تا عبد بکشه که حالا <تصفيق> دیگه هرچی رو که ممکن بود دست پاگیرم بشه از سر را برداشتم و یه ذخیره تناب حسابی دارم دیگه چی میخوام؟ ملایم و بلند گفت، ماهی، ماهی، تا دم مرگ دست از سرت بر نمی دارم. فکر کرد، یمون کنم اونم دست بر نداره. و به انتظار روشنایی نشست. نزدیک سپیددن بود و هوا سرد بود. خودش را به تخت فشرد تا گرم شود. فکر کرد، تا وقتی اون میتونه ادامه بده، منم میتونم. با نخستین پرتو روز تناب بیشتری در آب رها کرد و قایق یک سره میرفت و انگام طلوع اولین هلال خورشید تناب بر شانه راست پیرمرد بود. پیرمرد گفت: گفت، درمینه به شمال و فکر کرد با جریان آب به طرف مشرقم خیلی پیش رفتیم کاش با جریان حرکت کنه چون نشونه اونه که خسته شده خورشید که بالاتر آمد پیرمرد دریافت که ماهی هیچ خسته نشده است تنها یک نشانه مساعد وجود داشت شیب تناب در آب نشان میداد که ماهی در عمق کمتری شنا کند. گرچه این دلیل بیرون پریدن اون نمیشد اما از احتمالش خبر میداد. پیرمرد گفت: خدا کنه بپره. برای گرفتنش تناب بندازه کافی دارم. فکر کرد شاید اگه تنها با کمی بیشتر بکشم ازیتش کنه و بیرون بپره. کاش حالا که هوا روشنه بیرون بپره تا کیسای روی ستون فقراتش از هوا پر بشه و بعد اگه بمیره، نمیتونه خیلی پایین بره. سعی کرد تناب را بکشد، اما تناب از لحظه که ماهی گرفتار شده بود، در نهایت کشیدگی و تا سرحد پارگی بود. و پیرمرد وقتی خود را عقب کشید تا تناب را بکشد این را حس کرد و فهمید که نمیتواند بیشتر به تناب فشار بیاورد. فکر کرد، هیچ نباید تکونش بدم. هر تکونی جراحت غلاب و تو دهنش بازتر میکنه و ممکنه موقع پریدن غلاب از دهنش در بیاد. در هر حال، حالا که آفتابم هست، حالا بهتره و برای اولین بار مجبور نیستم بهش نگاه کنم. به تناب خزه های زرد چسبیده بود، اما پیرمرد میدانست که فقط تناب رو سنگین تر میکند و راضی بود. این همان خضه زرد خلیج بود که شبها آن همه درخشان میشد. بلند گفت "ای ماهی، خیلی دوست دارم، خیلی بهت اعترام می اما تا غروب امروز میکشمت و فکر کرد بذارو میزوار باشم. پرنده کوچکی از شمال به سوی قایق آمد. پرستویی بود که بسیار نزدیک به آب پرواز می پیرمرد پیره می توانست خستگیش را ببیند. پرنده به سوی انتهای قایق آمد و آنجا نشست. سپس گرد سر پیرمرد پرزد و روی تناب نشست که برایش جای راحتتری بود. پیرمرد از پرنده پرسید. ای دو، چه سالته؟ اولین سفرت کوچولو پیرمرد که حرف میزد پرنده نگاهش میکرد پرنده خسته تر از آن بود که تناب را سبک و سنگین کند و تنها هموندم که پاهای ظریفش به دان چنگ زده بود آن را دیده بود پیرمرد به پرنده گفت: جاش قرص حسابی قرصه بعد از همچ شب آرامی؟ عابدن قد خسته باشی <تصفيق> چی به سر پرنده ها میاد فکر کرد اقابا برای گرفتنشون به دریا میان اما این را به پرنده که از حرف های در نمی آورد و به زودی عقاب ها را میدید نگفت گفت حالا خستگی تو در کن پرنده کچولو. بعدش را بیفت مثل هر آدم یا پرنده یا ماهی دیگهی، برو دنبال بختت حرف زدن دلش رو گرم می کرد. چه پشتش شب قبل گرفته بود و حالا به شدت درد میکرد. اگه دولت میخواد خونم بمون حف که نمیتونم بادبونو بالا بکشم و با این نسیم ملایمی که میاد با خودم ببرم. خب میدونی دوستم با منه هموندم ماهی تکانی شدید به خود داد که پیرمرد را تا جلوی قایق کشاند و اگر خودش را محکم نگرفته بود و تناب نداده بود از قایق بیرون افتاده بود از لرزه شدید تناب پرنده پریده و پیرمرد حتی رفتنش را ندیده بود به دقت با دست راست کشش تناب را حس کرد و دید که از دستش خون میآید. بلند گفت: «حتما چیزی ناراحتش کرده. و تناب را عقب کشید تا شاید بتواند جهت ماهی را تغییر دهد. وقتی تناب به سرحد پاره شدن رسید با همون فشار نگهش داشت و در مقابل کشش تناب خود را عقب کشید. گفت: « حالا دیگه داری فشار رو احساس می کنی ماهی؟ خدا میدونه که منم احساسش میکنم در جستجوی پرنده که مصاحبتش را دوست داشت به دور دوروبر نگریست پرنده رفته بود فکر کرد زیاد اینجا نموندی اما از این طرف که رفتی به هیچ جای راحتتری بر نمیخوریم مگه اون که برگردی به ساحل چطور شد گذاشتم ماهی دستم و اون کشش سری ببره اخ، مکنه درم خرف میشم یا شاید چون سرم به نگاه کردن و فکر کردن به پرنده گرم بود از حالا دیگه حواسم و جمع کارم میکنم و بعدم باید ماهی رو بخورم تو خوف و بنیم تحلیل نره بلند گفت کاش به سرک اینجا بود و کاش کمی نمک داشتم بار سنگین تناب را از شانه راست به شانه چپش داد و با احتیاط زانو زد و دستش را در آب اغیانوز شست و بیش از یک دقیقه در آب نگه داشت و به باریکه خون در آب و به جریان آرام آب که با حرکت یک نواخت قایق از دستش می نگریست. گفت خیلی آهسته شده. پیر دلش میخواست دستش را بیشتر در آب نگه دارد. اما از ترس تکانی دیگر ایستاد و خودش را محکم گرفت و دستش را مقابل خورشید بالا گرفت. تنها یکی از تنابها دستش را بریده بود اما بریدگی در قسمت کارآمد دستش بود. میدانست که تا پایان کار به دستهایش نیاز خواهد داشت و نمیخواست پیش از آغاز کار دستهایش زخمی باشند. دستش که خوش شد گفت: «ه حالا باید ماهی تون کوچیک و بخورم. میتونم با چنگک برش دارم و اینجا راحت بخورم. زانوزد و با چنگک ماهی تن زیر تختی عقب قایق پیدا کرد و به دقت از میان گلوله های تناب به سوی خود کشید. دوباره تننا را روی شانه چپش گذاشت و با دست و بازوی چپ خودش را نگه داشت و ماهی تن را از غلاب چنگک بیرون کشید و چنگک را سر جایش گذاشت. یک زانویش را روی ماهی گذاشت و باریکه های از گوشت تیر فام را که پشت ماهی از سر تا دن کشیده شده بود برید. باریکه ها جناقی بودند و پیرمرد آنها را از ستون فقرات ماهی به طرف شکمش برید. شش باریکه را که برید، روی تخته ی جره قایق پهنشان کرد و چاقویش را با شلوارش پاک کرد و لاشه ماهی را از دم گرفت و به دریا افکند. گفت آه، فکر نکنم بتونم حتی یکیشم تا تبا خورم و چاقویش را روی یکی از باریکه ها کشید. فشار سنگین و مداوم تناب را حس کرد. دست چفش گرفته بود. زیر فشار تناب سخت شده بود. و پیرمرد با تحقیر با آن نگاه میکرد گفت آها نمی فهمم. این دیگه چه دستیه خب اگه میخوای چنگ بشی مثل چنگال یه جونور بشو ولی فایده به حالت نداره فکر کرد یالا و در تیرگی آب به شیب تناب نگاه کرد یالا با تا به دستت قوت بده تخصیر دستت نیست، ساعت ها که داری همراه ماهی میری، اما تو تا آباد میتونی هم روش بری، حالا ماهی تو بخور. تکی از ماهی را کند و به دهان گذاشت و آرام جوید، چندان هم ناگوار نبود، فکر کرد، خوب، جون، همه شیرش رو بکشم. با یک کمی آب لیمو یا نوک یا لیمو بد نمی شد. به دست منقبضش که به خشکی عضلات مرده بود گفت. چطوری <متصفح> دست ها؟ به خاطر تو بازم می خورم. تکی دیگر اون قطع را هم که دو قسمت کرده بود خورد. به دقت جوید و پوستش را توف کرد. چطوری دست؟ یا شاید هنوز زوده که بپرسم قطعه دیگری برداشت و جوید فکر کرد م... مایه پرخون و پرغووتیه شانس رو که به جای دولفین گرفتمش. دلفین زیادی شیرینه ولی این شیرین نیست و همون قدم قوت داره فکر کرد الا هیچ خوب نیست که آدم منطقی نباشه م. م. کاشی کمی نمک داشتم م. م. ترسیدم آفتاب بقیه گوشتارو خشک و خراب کنه پس با اینکه گرس نیستم. بهتر همه شو بخورم. ماهی که آرامه و نیوند پیش میره. همه میخورم و بعد دیگه آمادم. و گفت صبور باشده هستم. این کارو دارم برا تو میکنم. فکر کرد. کاش میتونستم به ماهی هم غذا بدم. اون برادر منه. اما باید بکشمشو، برای این کار باید قوی باشم. آرام و از روی وظیفه همه ی باریکه های ماهی را خورد. سپس راست ایستاد و دستش را با شلوارش پاک کرد. گفت، ای دست، حالا دیگه میتونی تناب بدی و منم فقط با دست راستم کار میکنم تا تو از این مسخره بازی دست برداری. پای چپش را بر تناب سنگین که روی دست چپش نگه داشته بود گذاشت و در جهت مخالف فشار ماهی به عقب تکی داد گفت خدا کنه گرفتگی دستان زودتر باز بشه چون نمیدونم ماهی میخواد چیکار بکنه فکر کرد ولی آروم به نظر میاد و دنبال نخشی خودشه. من نقشه چیه؟ نقشه من چیه؟ نقشه من بستگی به اون داره چون خیلی بزرگه اگه بیرون بپره میتونم بکشمش اما اگه تا عبد اون زیر بمونه خب منم تا عبد اون زیر به اون میمونن دست منقبضش را به شلوارش مالید و کوشید انگشتانش را نرم کند اما باز نمیشد فکر کرد شاید با درومدن آفتاب باز بشه شایدم بعد از اون تون مقوی خام باز بشه اگه بنا دست داشته باشم بازش میکنم به هر قیمتی که باشه ولی الان نمیخوام به زور بازش کنم از خودش باز بشه و برگرده، مخصوصا که دیشب موقع تناب دادن و باز کردن گره تنابا خیلی ازیتش کردن، به پهنی دریا نگاه کرد و دانست اکنون چه تنهاست، اما میتوانست منشورهای درون آب عمیق تیره و تنابی که به جلو کشیده و شد و بم شگفت سکوت را ببیند، اکنون گرد میآمدند و خبر از باد به سامان میدادند. به روبرو نگاه کرد و گله اردک های وحشی را دید که در آسمان و بر فراز دریا حک میشدند و باز پدیدار میشدند و میدانست که هیچ کس در دریا تنها نیست. به مردانی فکر کرد که میترسیدند با قایقی کوچک از دیرس ساحل دور شوند و می دانست که در ماههایی که هوا بی بند و بار و ناپایدار است حق به جانبان هاست. اما اکنون در ماه های طوفانزا بودند آقیدانست که اگر طوفانی در کار نباشد هوای ماه های طوفانزا بهترین هوای سال است. فکر اگه بخواد طوفان بشه و توی دریا باشی از چند روز جلوتر علامتشو تو آسمون می بینی. از ساحل نمی بینن چون نمیدونن دنبال چی می گردن توی ساحلم باید از شکل ابرها معلوم بشه ولی الان طوفانی در کار نیست. دا آسمان نگری است و ابرهای سفید کومولوس را دید که چون توده های مهربان بستنی بودند و خیلی بالاتر از آنها ابرهای نازک سیروس بر آسمان بلند سپتامبر بودند. گفت نسیم ملایم ماهی هوا برای من مساعدتر تو برای تو دست چپش هنوز گرفته بود اما داشت به آرامی بازش میکرد فکر کرد از گرفتن از متنفرم این خیانت بدن خود آدمه البته اگه آدم از یه مصمومیت غذایی به اصحال صفر بیفته، جرای دیگرون خار و خفیف میشه. اما گرفتگی از اوله، آدم را خودش خار میکنه. فکر کرد اگه پسرک اینجا بود، دستم اومی مالید و از بازو به پایین نرم میکرد. هرچند که خودش نرم میشه. بعد، قبل از آنکه کم شدن شیب تناب را در آب ببیند، تغییر فشارش را با دست راست حس کرد. بعد هم چونان که به تناب تکیه داده بود و دست چپش را تند و محکم بر رانش می دید که شیب تناب آرام بالا میآید گفت، در میاد بالا، دارم یه بالا، بجم دست، بجم، لطفاً بجم. تناب آرام و یک نواخت بالا می آمد و بعد به سطح اقیانوس پیچ روی قایق آمد و ماهی از آب در آمد. در آمد و در آمد و آب بود که از پهلوهایش میریخت بدنش در پرتو خورشید می و سر و پشتش ارقوانی تیره بود و در نور خورشید شیارهای پهلوهایش پهن و قفایی کمرنگ مینمود نیزهاش به بلندی چوب بیسبال بود و انتهایش چون شمشیر دو دم باریک میشد و تمام طول قامتش را از آب بیرون کشید و باز نرم چون قواسی ماهر به درون آب فرو رفت و پیرمرد تیغه داس عظیمش را دید که پایین میرفت و طناب را که شتابان باز میشد پیرمرد گفت <تصفيق> نینمتاش از خیر داره تناب سریع اما یک نواخت باز میشد و ماهی هیچ حراسان نبود پیرمرد با دو دست می کوشید که تناب را تا سر استقامتش نگه دارد میدانست که اگر نتواند سرعت ماهی را با فشار یک نواخت تناب آرام کند ماهی تمام تناب را میبرد و پاره می کند کرد. چارت ماهی بزرگیه باید موجا کنم. اگه بذارم به قدرتش پی ببره یا بفهمه که اگه دور برداشته بود، چه ها میتونست بکنه. اگه من جای اون بودم، همه ی توانم رو میذاشته ما همچی میرفتم که یه چیزی پاره بشه. خدا را شک که اونا به زیرکی ما که اونا رو میکشیم نیستن، هرچند که نجیبتر و قویتر از ما هستن. پیر مرد در زندگیش ماهی های بزرگ فراوان دیده بود. ماهیهایی سنگین تر از پانصد کیلو تا به حال دوتا از آنها رو هم گرفته بود ولی نه به تنهایی و حالا تنها و دور از دیدرس ساحل به بزرگترین ماهی که در عمرش دیده بود و بزرگتر از هرچی شنیده بود گره خورده بود و دست چپش هنوز چون پنجه بسته اواقاب چنگ شده بود فکر کرد بالاخره باز میشه. حتما باز میشه، باز میشه تا به رست راستم کمک کنه، این ماهی و دو دست من سه تا برادرن، باید باز بشه، اگه باز نشه پس تو نالایقه. ماهی باز از سرعتش کاسته بود و روال معمول پیش میرفت. پیرمرد فکر کرد، نمیدونم چرا پرید بیرون یهو. اینگاری میخواست رو به روخم بکشه. حالا دیگه کاش کشمنم میتونستم بهش نشون بدم چجور مردی هستم. اون وقت دست کرختم و میدید. بذار خیال کنه از اون که هستم مردترم ترم تا منم همون باشم. کاش این ماهی بودم یا همه چیزهای اون در مقابل اراده و هوشم راحت به تخته قایق تکی داده بود و رنج را هر طور که پیش می آمد و خود هموار می کرد و ماهی یک شنا می کرد و قایق بر پهنه آب تیره آرام می گذشت. با بادی که از مشرق وزید آب کمی بالا آمد و هنگام ظهر دست چپش باز شد گفت اه اه ماهی ماهی خبرهای بدی واسد دارم با تناب را روی گونی که بر پشتش انداخته بود جابجا جا کرد جایش اکنون راحت بود اما رنج می برد. گرچه به هیچ وش نمی که رنج میبرد. گفت این درست رو که من آدم دینداری نیستم اما برای این که ماهی رو بگیرم، ده بار دعای پدر ما و ده بارم دعای مریم مقدس رو میخونم. اگه بگیرمش نظر میکنم برم زیارت باکره ی کبیر. حتما میرم. انگاه توتیوار به دعا خواندن پرداخت. گاه چونم خسته میشد که دعا یادش میرفت. ان وقت ان را تند میخاند تا خود به خود به, خود به خاطرش بیایند. فکر کرد. ای مریم مقدس خیلی آسان تر از ای پدر ماست. ما ای مریم مقدس، پروردگار نگه دارد بات. تو در میان زنان مقدسی و این چیز ایسا که ذاتی بتن توست مقدس بات. ای مریم مقدس، ای مادر پروردگار، اکنون و در دن مرگ ما, ما گناهکاران را بیا مرز و دعای مکان آمین. و ای باکره مقدس برای مرگ این ماهی با همه شکوم انجش دعا کن دعاهایش را که خواند حس کرد سباکتر شده است اما همچنان و شاید بیش از پیش رنج می‌برد به تختی جلوی قایق تکیه داد و ناخداگاه به مالیدن دست چپش پرداخت با وجود نسیم ملایمی که میوزید خورشید در نهایت گرمی بود. گفت بهتره به اون قلب و کوچیک تومه بزنم و بندازمش تو آب. اگه ماهی بخواد یه شب دیگه هم نگه همون بداره باید یه چیزی بخورم. خورم. گمون نکنم اینجا جز دلفین چیز دیگه ای پیدا بشه. اما اگه همونم تر و تازه باشه بعد نیست. کاش امشب سر و یه ماهی پرنده پیدا میشد. حف که چراغ ندارم که بکشونمش و اگر نه ماهی پرنده خام خیلی خوشمزه است و لازمم نیستی که تیکش بکنم. آه، باタミン نیرومو حفظ کنم. یا حضرت مسیح، هیچ نمیدونستم انقدر گنده است. گفت ولی می‌کشمش. و همه عظمت و جلالش میکشمش، فکرش کرد گرچه ظالمانه است اما بهش نشون میدم از انسان چه کارایی برمیاد و تحمل انسان تا کجا هست گفت به پسرک گفتم که پیرمرد غریبی هستم حالا وقتشه که اینو ثابت کنم آن بارها و بارها که این را ثابت کرده بود دیگر هیچ به شمار نمی آمد، اکنون باز از نو آن را ثابت می کرد، هر روز برایش روزی نو بود و به وقت انجام کار هرگز به گذشته نمی اندیشید، فکر کرد، کاش می خوابید و منم می خوابیدم و خواب شیرها رو می دیدم، چرا فقط شیرها مهمترین چیزی هستند که واسم موندن؟ خود گفت فکر نکن پیر مرد آروم به تخت تکیه بده و دوها به هیچی فکر نکن اون داره کارش رو میکنه تو هم تو اونجایی که میتونی هیچ کاری نکن.